به نام خدا، با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز دختر پالاندوز قهرمانان قصه عمومن متفاوت از دیگر اشخاصی هستند که در قصه حضور دارند. این تفاوت یا در نوع تولد است، یا در ویژگی جسمانی یا قرار گرفتن در مرتبه اعداد خاص مثل سه، هفت، چهل، و یا در وضعیت طبقاتی در روایت دختر پالاندوز تفاوت قهرمان که به لحاظ ظاهر با چهل دختر دیگر تفاوتی ندارد در وضعیت طبقاتی اوست. او دختر یک پالاندوز است و چهل دختر دیگر از اعیان و اشراف هستند ضمن اینکه او چهلمین دختری است که به شاهزاده خانم شبیه است زندیات صبحی در کتاب افثانه ها روایتی با عنوان چهل دوزد زبط کرده است که با روایت دختر پالاندوز بسیار مشابه است. خلاصه روایت دختر پالاندوز را می نویسیم. پادشاهی بود که دختر زیبایی داشت. پادشاه به این دخترش بسیار علاق بود. برای همین همیشه سعی می کرد که اونو راضی نگه داره. یه روزی دختر از پدرش خواست تا در کنار قصر چهل دوست یک قصر براش بسازه پادشاه گفت چهل دوست آدم خطرناکی هستند ممکنه بهت آسیب برسونن دختر گفت من نقشهی دارم که اونها نتونن منو بشناسم به دستور پادشاه قصری کنار قصر چهل دوست ساختند وقتی کار ساختن قصر تموم شد دختر پادشاه به پدرش گفت دستور بدید نقاش ها از صورت من چند تا تصویر بکشن و این تصویر رو بدید در همه جای مملکت بگردونن و از میان دخترای اعیان و اشراف هر دختری که شبیه من بود و به اینجا بیارن وقتی تعداد دخترا به چهل نفر رسیدن با اونها به قصر میرم و در میان چهل و یک دختر شبیه هم چهل دوست نمیتونن منو بشنسن؟ پادشاه نقشه دخترش رو پسندید و اون کاری رو انجام داد که دخترش گفته بود مامورها تصویر به دست گشتن و گشتن و تونستن سی و نه نفر از دختران اعیان و اشراف و بزرگان رو که همقدر و شکل دختر پادشاه بودن و حاضر کنند. اما هرچه که جست و جو کردن نفر چهلومو نتونستن پیدا کنن دختر پادشاه بهشون گفت اگه نفر چهلوم از بین اعیان و اشرافم نبود مهم نیست فقط شبیه من باشه کافیه مستخدم ها و فراش ها راه افتادن بین کوچه و بازار تا اینکه یکی از اونها چشمش افتاد به یک دکان پالاندوزی که دوخت پالان و افسار و زین اسب و الاق رو به عهده داشت. دختری رو تو اونجا دید که با تصویر شاهزاده خانم مونه میزد. دختر اونقدر قشنگ بود که آدم دلش میخواست نخوره و ننوشه فقط شیفته جمال و خط تو خال او بشه. وقتی که اون مستخته ماجرا رو برای دختر پالاندوز تعریف کرد، دختر گفت من حرفی ندارم اما پدرم باید رضایت بده. وقتی پالاندوز به دوکان اومد دختر ماجرا رو براش تعریف کرد پالاندوزم رضایت داد و دختر به همراه اون فراش یا اون مستخدم به قصر پادشاه رفت روزی که دخترا میخواستن به قصر دختر پادشاه برن شاهزاد خانم بهشون گفت در کنار قصر ما چهل دوز زندگی میکنند که بسیار بیرحمند هیچ کدوم از شماها حق ندارید بدون اجازه من پاتون رو از قصر بیرون بذارید. دخترها وارد قصر شدند و روز و روزگار رو به خوشی و شادمانی می‌گذروندن. مدتی گذشت. دختر پالاندوز که خیلی کنجکاف بود، رفته بود تو فکر که هر طور شده باید سر از کار این دوزا در بیارم. اونا چجور جور که شاهزاده خانم این همه ازشون می‌ترسه؟ یه روز صبح زود دختر پالاندوز از خواب بیدار شد، لباسش رو پوشید، کلید در قصر رو برداشت و آهسته جوری که دخترهای دیگر رو بیدار نکنه به بالای بام قصر رفت و از اونجا مشغول تماشای قصر چهل دوست شد. قصر اونقدر مجلل و زیبا بود که قصر دختر پادشاه در برابر اون جلوهی نداشت. دختر پالاندوز وقتی میخواست برگرده چشمش افتاد به پیرمردی که داشت از چاه قصر چهل دوست آب میکشید بیرون دختر گفت سلام عمو جان اجازه میدی بیام به حیاتتون پیرمرد نگاه کرد دید دختری مثل پنجه آفتاب لب بوم نشسته گفت البته بفرمایید بعد رفت و نردبون آورد دختر از نردبون پایین اومد، وارد حیات قصر شد. و از پیرمرد پرسید: اینجا خونه کیه؟ پیرمرد گفت: اینجا قصر چهل دوز، چهل تا دوز با رئیسشون چهل دوز باشی اینجا زندگی میکنن. دختر پالان پیرمرد رو به حرف کشید و فهمید که دوزتا آفتاب نزده بیرون میرن و قافله ها و کاروان ها رو غارت میکنن. و شب با اموال دزدی به قصر برمیگردند از هیچ کس هم نمیترسان پیرمرد هم نوکر اوناست و براشون غذا درست میکنه دختر اتاق قصر رو دید هر اتاقی مخصوص یک چیز بود یک اتاق مخصوص طلا و نقره یکی مخصوص جواهرات یکی دیگه مخصوص پارچه‌های گران قیمت پیرمرد از دختر پرسید نگفتی تو کی هستی؟ دختر گفت بعدا براتون میگم. پیره مدرف که از چاه آب بکشه. چند سطلی آب بیرون کشید دختر پالاندوز گفت شما خسته شدید اجازه بدید من کمکتون کنم. بعد سطل رو گرفت و به چاه انداخت. موقعی که میخواست سطل رو بالا بکشه تناب و ول کرد. سطل توی چاه افتاد و از تناب جدا شد. گفت ای وای ستل تو چاه افتاد اجازه بدید برم و اونو بیارم پیرمرد گفت نه کار تو نیست تناب و به کمر من ببند خودم میرم و ستل رو میارم دختر پالاندوز تنابو و دور کمر پیرمرد بست پیرمرد وارد چاه شد وقتی به ته چاه رسید دختر پالاندوز تنابو و انداخت توی چاه خودشم رفت یک سینی برداشت و اون رو از طلا و نقره و جواهر و پارچه پر کرد و به قصر خودشون برگشت. دخترا هنوز از خواب بیدار نشده بودند. وقتی دختر پادشاه از خواب بلند شد، دختر پالاندوز سینی رو پیشش برد و گفت اینها هدیه‌ایه که عموم من فرستاده. دختر پادشاه تعجب کرد و پیش خودش گفت دختر پالاندوز باشی و برا تلا و جواهر بفرستن اروپ که شد دختر پالاندوز رفت روی بام قصر تا سرگوشی آب بده دید اومدن و در بدر دنبال پیرمرد مرد می گردن آقبت اونو توی چاه پیدا کردن و بالا کشیدنش پیر مرد اصل ماجرا رو بهشون نگفت صبح روز بعد وقتی دخترا هنوز خواب بودن دختر پالاندوز باز کلید در قصر و برداشت و به پشت بام رفت. دید پیرمرد مشغول جارو زدن حیاته. گفت سلام امو دیروز صدایی شنیدم ترسیدم چهل دزد باشن. این بود که شما رو ته کردم و رفتم روم سیاه. پیرمرد گفت من که طوریم نشده. دختر گفت اجازه میدی بیام پایین؟ پیرمرد گفت: البته دخترم بعد هم نردبان رو گذاشت و دختر پایین اومد و به همراه پیرمرد مشغول تماشای اتاقهای قصر شدند. به اتاق مخصوص چهار میخ رسیدند. دختر گفت: این دیگه چیه؟ پیرمرد گفت: چهار میخه. چهل باشی ها و ثروتمندان دستگیر شده رو به اینجا میاره. پاشونو به چهار میخ میبنده تا جای پولاشونو بگن. بعد برای اینکه طرز کار اونو به دختر نشون بده خودش رف روی چهار میخ. دخترم دستوپای اونو با تناب بست و محکم کرد. یک سینی از چیزهای قیمتی برداشت و به قصر شاهزاده خانم برگشت. وقتی دختر را بیدار شدن دختر پالاندوز سینی رو به دختر پادشاه نشون داد و گفت که اممش هدیه فرستاده. عصر اون روز باز دختر پالاندوز رفت سر و گوشی آب بده. از سوراخ قصر چهل دوز صداشون شنید که پیر مرد رو روی چهارمیخ پیدا کرده. پیرمرد باز هم ماجرا رو به دوست ها نگفت و دختر پالاندوز با خیال راحت به قصر برگشت. صبح روز بعد باز دختر خودش رو به بام رسوند و با زبون بازی پیرمرد راضی کرد که او به قصر راه بده. پیرمرد نردبون گذاشت و دختر پا به حیات قصر گذاشت. پیرمرد گفت تا نگی کی هستی تو رو به گردش نمی برم دختر گفت من و سی و نه دختر دیگه همراه با شاهزاده خانم در همسایگی شما زندگی می کنیم اما اینو نباد میکستی بگی بعد اتاقها رو گشتم تا به اتاق سیاه چال رسیدم دختر خواست وارد بشه پیرمرد گفت خطرناکه بگذار اول من برم بعد تو بیا تو تا پیرمرد پاش و گذاشت تو سیاهچال دختر در رو به روش بست بعد هم مثل روزای دیگه یه سینی پر از اون جواهرات و پولها و چیزایی با ارزش و برداشت رو به قصر برد غروب دختر پالاندوز رفت روی بام تا سر و بده دید دوزها گشتن و پیرمرد و توی اتاق سیاهچال پیدا کردند رئیس دزدها خیلی عصبانی بود خلاصه اونقدر پیرمرد و تو فشار گذاشت تا پیرمرد مجبور شد ماجرای اومدن دختر پالاندوز و همسایگی چهل دختر و شاهزاد خانم رو براشون بگه رئیس دزدها کمی فکر کرد و گفت که اینطور پس ما با همدیگه همسایه هستیم فردا صبح میری و اونها را برای شام دعوت میکیه دختر پالان تا این حرفو شنید رنگ از روش پرید فوری به قصر برگشت و رفت پیش شاهزاده خانم که من رفته بودم روی بام هواخوری که صدای چهل و شنیدم اونا میخوان فردا شب ما رو به شام دعوت کنن شاهزاده خانم ناراحت شد و گفت اونها از راز ما آگاه شدن حالا چیکار کنیم دختر پالاندوز گفت شما ناراحت نباشید کارها را بذارید به احده من برای فردا شب هم امر کنید چهل و یک چمدان کوچک و چهل و یک کبوتر برامون فراهم کنم شب که شد چهل و یک دختر روبند زده و چمدون به دست وارد قصر چهل دوست شدند و سلام کردند چهل دوز شام مفصلی براشون تدارک دیده بودند. وقتی دخترها شام خوردن دختر پالاندوز گفت شاهزاده خانوم و بقیه خانومها عادت دارند بعد از شام هموم کنند چهل دوز باشی دستور داد هموم رو آماده کنند هموم که آماده شد دخترها وارد هموم شدند. دختر پادشاه شروع کرد به درآوردن لباساش دختر پالاندوز گفت شخصیت خانم چیکار میکنید زود لباساتونو بپوشید بعد به رو گفت که در رو باز کنن و کبوترا رو بیرون بیارن بعد به آرومی از در پشتی قصر خارج شدند و به قصر خودشون رفتن دوستها هرچی منتظر شدن دیدن دخترا بیرون نمیان اما صدای شالاپوش شلوپ از توی هموم شنیده میشه درو در باز کردند. دیدن دختری در کار نیست بلکه کبوترها دور اون خزینه و محل آب پرواز میکنن رئیس دزدا گفت پدری از دختر پالاندوز در بیارم که دیگه حفظ رنگ کردن ما به سرش نیفته شاسد خانم تو قصرش دید که سینریزش جا گذاشته ناراحت شد و به دختر پالاندوز گفت پدرم هر ماه موقع دیدن هلال ماه به این سینه ریز منم نگاه میکنه. باید هرطور طور که شده اونو برای من پس بیاری در غیر این صورت بهش میگم که تو ما رو به قصر چهل دوز بردی. صبح روز بعد دختر پالاندوز مثل روزهای دیگه خودش رو به حیات قصر چهل دوز رسون و از پیرمرد خواست که سینریز شاهزاده خانم رو پس بده. پیرمرد گفت سینریز پیش چهل دوز باشیه. دختر گفت اگه سینریز رو برام بیاری من هم کلید قصر رو بهت میدم پیرمرد گفت چطوری دختر گفت امشب شما لباس زنانه بتن کن و به در قصر بیا من به شاهزاده میگم که تو عمه من هستی سینریز رو هم با خودت بیار من هم کلید در قصر رو بهت میدم پیرمرد قبول کرد شب که شد دوزها اومدن و پیرمرد ماجرا رو براشون تعریف کرد. بعد هم لباس زنانهی به تن کرد سینه ریز رو گرفت و به در قصر شاهزاد خانم رفت. سینه ریز رو به دختر پالاندوز داد. دختر گفت امشب من کلید و میذارم زیر متکای شما. بعد با صدای بلند گفت امه جان بیا تا موهات شونه بزنم. دختر دید که اون مرد خال بزرگی رو سرش داره. اونو برید. پیرمرد از حال رفت. دختر اونو برد و در اتاق مخصوص مهمونا خوابوند. خالش رو هم توی دستمالی پیچید و زیر متکاش گذاشت. نیمه های شب پیرمرد به هوش اومد. دست کرد زیر متکاش رو دستمال و بیرون کشید. فکر کرد کلیده. اونا برداشت و به قصر چهل دوست برگشت. چل دز باشی وقتی دستمال پیرمرد رو باز کرد دید خاله خیلی عصبانی شد کتک مفصلی به پیرمرد زد و گفت باید هر طور شده وارد قصرشون بشین. پیرمرد گفت من ای دارم دستور بدید چهل تا صندوق درست کنم دزدها رو یکی یکی توی صندوقها مخفی کنید بعد اونها رو بار شطور کنیم و به عنوان اینکه مال و تجاره و کالا آوردیم وارد قصر دخترها بشیم. شب که شد صندوق‌ها رو یکی یکی باز کنیم و همه به اونها حمله کنیم. رئیس دوست ها نقشه پیرمرد رو پسندید و با این کلک وارد قصر شاهزاده خانم شد. غافل از اینکه دختر پالاندوز همه حرفای اونها رو از روی پشت بام شنیده. دختر پالان پالاندوز به شاهزاده خانم ماجرا رو گفت و خواست که دستور بده چهل دیگه آب جوش آماده کنند. وقتی پیرمرد و رئیس دوزها به اتاق مخصوص مهمان رفتن، دختر آب جوش رو ریختن توی صندوقها. نصف شب رئیس دوزها و پیرمرد رفتن سراغ صندوقها. تا بازشون کنن و دوست ها رو بیرون بیارن. اما وقتی در صندوق ها رو باز کردن دیدن همه خفه شدن. رئیس دزدها به پیرمرد گفت میدونم که این بلا رو دختر پالاندو سر آورده بعد صندوق ها رو بار شطور کردن و بی سر و صدا از قصر شاهزاده بیرون رفتن. رئیس دوست ها که خیلی عصبانی بود به پیرمرد گفت هر جور شده باید این دختر پالاندوز رو برای من خواستگاری کنی پیرمرد صبح روز بعد به قصر رفت و دختر پالاندوز رو از شاهزاده خانم خاستگاری کرد شاهزاده مخالفت کرد اما دختر پالاندوز گفت شما موافقت کنید من میدونم باش چیکار کنم پیرمرد خوشحال و خندان به قصر چهل دوز برگشت و به رئیس خبر داد بعد از رفتن پیرمرد شاهزاده خانم به دختر پالاندوز گفت چرا به خاستگاریش موافقت کردی اون آدم شرور و خطرناکیه دختر پالاندوز گفت من ازش خوشم میاد اون مرد شجاع و دلیریه اون هم به من علاقمند میشه من اصلاحش میکنم فقط دستور بدید یک مجسمه شبیه من بسازن یک کیسه یا مشکی از شیره و یک صندوق هم برای من بیارن شهزاد خانم دستور داد هر چیزی که دختر پالاندوز لازم داره رو براش آماده کنه. چند روز بعد عروسی مفصلی به راه انداختن شب عروسی دختر پالاندوز مجسمه رو حسابی آرایش کرد و یک تور به صورتش و یک چادر هم به سرش انداخت و اون کیسه یا مشک رو در شکم مجسمه جادا بعد نخی از گردن مجسمه به داخل صندوق کشید خودش هم توی صندوق پنهان شد رئیس دوزها منتظر بود که در فرصت مناسب انتقام خودش رو از دختر پالاندوز بگیره. وقت بزن و به کوب عروسی تموم شد. وارد اتاق عروس خانم شد و عروس خانم دید که روی صندلی نشسته و سرش رو پایین انداخته. رئیس دوزا گفت: "بالاخره به هم رسیدیم تو منو خونه خراب کردی." بعد شمشیرش رو کشید و در شکم مجسم فرو کرد. مشک سوراخ شد و شیره جاری شد. رئیس دوزها گفت: با این بلاهایی که تو سر من آوردی باید خونت رو بخورم. دستش رو پر از شیره کرد و نوشید، دید خیلی شیرینه. فریاد زد وای خدایا، دختری که خونش این همه شیرین باشه، ببین خودش چقدر شیرین بوده من چه حماقتی کردم که اونو کشتم دیگه این زندگی به چه درد میخوره رئیس دوست ها از شدت ناراحتی میخواست شمشیرشو در قلب خودش فرو کنه دختر پالاندوز از صندوق بیرون آمد و گفت خودتو نکش من زنده هستم رئیس دوست ها به عقل و هوش دختر آفرین گفت فردای اون روز رئیس دوست ها گفت پیرمرد که مریضه حالا من با این چهل تا جنازه چیکار کنم؟ دختر پالان دوز گفت تو فقط چهل تا کفن بیار و این چهل دوست رو کفن پوش کن بقیهش با من. رئیس دوست ها ترتیب کارها رو داد و برای انجام کاری از خونه بیرون رفت. دختر پالاندوز یکی از جسدها را آورد و گذاشت دم در و شروع کرد به گریه کردن و شعر خوندن و نوه سرایی درویشی از کوچه میگذشت که اونو دید گفت برای چی گریه می‌کنی دختر پالاندوز گفت از دار دنیا فقط یک شوهر داشتم او هم دستم رفت حالا کسی رو ندارم اونو ببر و دفنش کنه قرار شد درویش در مقابل دستموز جسد رو ببره و دفن کنه دختر بهش گفت اینو هم بدون که شوهرم منو خیلی دوست داشت اگه اونو دفن کنی باز به اینجا برمیگرده. درویش مرده رو به دوش گرفت و به طرف قبرستون رفت اون یه قبر خالی پیدا کرد و مرده رو توش انداخت و خاک ریخ روش بعد برگشت پیش زن تا رو بگیره در این مدت هم دختر پالاندوز مرده دومی رو آورد گذاشت جلوی در درویش به خونه رسید دید مرده اونجاست باز اونو بغل کرد و برد توی قبر گودتری دفنش کرد سنگی هم روش گذاشت و برگشت دختر پالاندوز مرده سوم رو جلوی در گذاشته بود درویش به خونه پالاندوز که رسید دید عجب باز مرده برگشته بغلش کرد و برد خلاصه در 39 بار درویش به گمان اینکه مرده برمیگرده 39 جسد رو دفن کرد بار جعلوم مرده رو برد انداق زیر سنگ آسیاب پیرمردی بیرون زیر ناودون آسیاب داشت همون میکرد یه مرتبه دید دستی از ناودون آبیزون شد ترسی بعد یه پا هم ازش بیرون اومد بیشتر ترسی وقتی دید یه کله هم تو ناودون پیدا شد همونطور لخت و اور از آب بیرون پرید و بنا کرد به دویدن در که بالای آسیاب بیستاده بود دید مردی لخت و اور میدوه خیال کرد همون مرد است که داره برمیگرده دنبالش رفت تا اینکه پیرمرد در جنگلی ناپدید شد درویش به خونه پالاندوز برگشت دست مزدش رو گرفت و رفت دنبال کار خودش شب که رئیس دوست ها اومد دید جنازهای در کار نیست به دختر پالاندوز بیشتر علاقه من شد اون دو سالها خوش و خرم زندگی کردند دختر پالاندوز افسانه‌های های آزربایجان صفحه 117 دکتر نوردین سالمی نشر مینا چاپ 1376 شنوندگان عزیزم، امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و امیدوارم در داستان بعد هم منو همراهی بکنید همه شما رو به خدای مهربون می آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را می سفر کنیم؟ جایی که پریها و کوطول ها زندگی میکنن؟ <تصفيق> کانال هزار رفسان همونیه که دنبال جایی که داستان های افسان ای استوره ای سر, سر دنیا به صورت صوتی و جذاب، شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری